حکایت، بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا گفت کمینه اون که مراد خاطر یاران بر مساله خیش مقدم دارد، و حکما گفتند برادر که در بند خیش است، نه برادر و نه خیش است، همراه اگر شتاب کند در سفر تو بیست، دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست، چون نبود خیش را دیانت و تطوا قطع رحم بهتر از مبدت قربا. یاد دارم که مدعی در این بیت بر قول من اعتراض کرده بود و گفته، حق تعالی در کتاب مجید از قطع رحم نه کرده است و به مودت زل قربا فرموده. و این چه تو گفتی مناقض آن است گفتم غلط کردی که موافق قرآن است و اینجا هدا که علا تشرک شکر بی مالیسلک بهی علمون فلا تو هما، هزار خیش که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد